ما اگر هزاران بار تلاوت مرحوم استاد عبدالباسط رو در کازمه این در هر که استاد منشاری کرده هنر رو با معنویات از حسی, حسی من مثل که من دارم مثلا به تلاوت استاد صدا که من شنیدم اون این صدا از قاسم حسان رو باید یکی از نوابق عالم قراعت به اصابه بود ولی شکرین ملیسوف جوری تلاوت رو عرضه کرد که واقعا قلوب رو تسخیر میکرد این برنامه, این برنامه استاد محمود علی البننا. شنوندگان عزیزه برنامه با ستارگان تلاوت سلام امیدوارم که تا امروز از این برنامه ها به نحو مختصی استفاده کرده باشین و این برنامه ها مفید باشه و خدا کمک کنه که ما بتونیم به بهترین نه در این خصوص اداینده دین بکنیم. امروز خواهیم پرداخت به زندگی نامه و آثار و نقاط قوت تلاوت استاد محمود علی یادمه که اولین باری که من از این استاد یک تلاوت شنیدن تلاوت سوری موارکه تاها بود که بسیار جذب شدم و اون تلاوت رو در سال 63 حفظ کردم طوری که تمام فرازها و ها رو به خوبی حفظ شدم و خیلی هم توی تلاوتم از تلاوتها ایشون استفاده می کردم اما همیشه به خاطر اینکه که بمه صدای خوبی نداشتم نمی تونستم تمام نوارهای ایشون رو بخونم و در یک قسمت هایی همیشه مشکل داشتم شاید یکی از دلایلی که تونستم اون موقع تفاوت صداها رو بفهمم همین تطبیق دادن صدای خودم بود با صدای استاد محمود علی برنا یعنی دقیقا صدایشون یک صدای بسیار بند قوی و پر و صاف و زیبا بنده تو این قسمت تفاوت جدی با ایشون داشتم این صدای بم صاف، زیبا، پخته و جا افتاده دقیقا در نقطه مقابلش یک صدای بسیار زیر و اوج و روانی هم شنیده میشه این ویژگی صدای استاد محمود الندرناس از نظر سلامت و داشتن پرده های صوتی سالم و کاربردی. اما واسه اینکه بیشتر آشنا بشید با نوع تلاوتای یک تلاوت کوتاه از سوره ملق نازعات از آیه 27 تا 33 رو با هم میشنویم تا ادامه برنامه. قاولاه من الشیطان Bismillah. دوستان شنیدید اصل این تلاوت است که در ابتدا سوری محرکه بغره خونده شده و بعد از اون سوری محرکه نازات اما اگر موافق باشید الان بشنویم توضیحات جنابهای میرزایی رو در خصوص زندگی نامه استاد و بررسی برخی از آثار ایشون با هم میشنویم بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی ما در برنامه های رادیو قرآن در این برنامه انشاءالله از یکی از بهترین قاریان عصر طلایی تلاوت صحبت میکنیم که در زمینه تحقق آرزوهای جامعه قرآنی مصر تلاشها و فعالیتهای ارزنده انجام داد صاحب شهرت زیادی در دنیای تلاوت بود این قاری خوشصدا محمود علل هست صاحب صدای آسمانی در دنیای تلاوت يا جذو شیخ محمود آل البنو در عواست دسامبر سال 1926 میلادی در روستای شبراباس از شهر شبین در استان منوفیه مصر به دنیا اومد. به خاطر اینکه پدرش دوست داشت ایشون تبدیل بشه به یکی از علمای الازهر محمود رو روانه مکتب خانه کرد ایشون در عرض چهار سال موفق شد کل قرآن کریم رو حفظ بکنه و آماده بشه برای مرحله بعدی تیشاف در مسیح فعالیتی دیگر و القرآن. فرآن دخالت الكتاب و من عرضی به علاج سر. تحفظ فی صورت و کد و بعدین نصف الختمه و يعني یعنی تقریباً حدود و الختمه کلی. در سال 1990 میلادی به مأحده من شویت ملحق شد. مشغول تحصیل در علوم قرآنی، تجوید و قرآات شد. در همین ایام استعدادش و موهبت الهیش در تلاوت قرآن شکوفا شد و صدای زیبا و جذابش موجب جلب توجه اخشار مختلف مردمی به این قاری نجوان شد. علاقه خیلی زیادی به استماع تلاوت قاریان بزرگ عصر خودش داشت مثل رفعت، ششایی، علی محمود، محمد سیفی و همینطور مصطفی اسماییی اون طوری که خودش اظهار کرده در معهد منشاوی از سب که محمد رفعت تقلید می کرده و به تلاوت قرآن می پرداخته و در تقلید از صد که تلاوت قاریان بزرگ دیگر اون دوره هم مهارت داشته به همین خاطر دعوت مختلفی از ایشون صورت می گرفت برای اینکه در محافل و مجالس مختلف به تلاوت قرآن بپردازه محمود بنا برای اولین بار در سن 22 سالگی یعنی در سال 1948 میلادی در مقابل هیئت مهارت سنجی رادیو قرار گرفت و با یک امتیاز خوبی مورد پذیرش اعضای داوران هیئت مهارت سنجی قرار گرفت و به عنوان دومین قاری جوان در تاریخ رادیو مصر یعنی بعد از که ایشون هم در جوانی مورد پذیرش رادیو قرار گرفت به تلاوت قرآن پدر إخوة الإيمان عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة للقارئ الشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الإسراء وننزل من من یک هفته بعد از اینکه در هیئت پذیرفته شد یک ابلاغی به دستش رسید مبنی بر اینکه برای تلاوت در دوره قرآن سباح به استودیوی رادیو مراجعه بکند لازم توضیح بدیم این دوره ای دوره بود که توسط قاریان مختلف به شکل روزانه تلاوت میشد هر قاری در هر روز بخش مختلفی از آیات رو تلاوت میکرد و این تلاوت متوالی بعد از مدتی به ختم قرآن منجر میشد به هر قاری در هر روز ادامه بخش تلاوت شده در روز قبل توسط قاری قبلی رو انجام می‌داد. قاریان این برنامه هم از چهره‌های شاخص و طراز اول اصر طلای تلاوت بودند. طبیعی بود که شیخ محمود که قاری جوان بود و برای بار اول هم می‌خواست در رادیو تلاوت بکنه، یک کمی دچار خوف و اضطراب بشه و خودش رو در برابر یک موقعیت بسیار دشوار ببینه. خود ایشون در خاطراتش در این زمینه میگه که اون شب تا صبح نخوابیدم صبح زود خودم رو به رادیو رسوندم از پله های ساختمان رادیو بالا رفتم ترس من و بالا رفتن از پله های ساختمان رادیو و همینطور عبوحت اولین رویارویی با محیط استودیو و میکروفون رادیو شرایط سختی رو برای من به وجود آورد به نحوی که وقتی مجری برنامه اعلام کرد که برای اولین بار صدای قاری جوان محمود علل البنه رو کوش میکنیم بعد از اولین فراز تلاوت صدا و نفس من در سینه حبس شد به یک ترتیبی به تهیه کننده برنامه اطلاع دادم که من قادر به ادامه تلاوت نیستم ایشون با اشاره اعلام کرد الان در حال پخش زنده هستیم صدای شما هم در برابر میکروفون خیلی خوبه سعی خودت رو بکن و به خودت مسلط باش. محمود آل میگه من هم تلاوت رو ادامه دادم و همین که کم کم به پرده های اوج و جواب صدا رسیدم به لطف خداوند متعال اعتماد به نفس خودم رو تونستم حفظ بکنم و برای اولین بار در رادیو و به شکل زنده یک تلاوت خوبی رو انجام بدم. دو مطلب باعث شهرت روزافزون شیخ محمود علیلبنا در رادیو شد اولین مطلب صدای زیبا جذاب و طریقه متین و باوقار ایشون در تلاوت بود و مطلب دیگر هم خودداری بعضی از قاریان تراز اول برای تلاوت در رادیو بود که عدم حضور این قاریان باعث شد که شرایطی فراهم بشه که محمود علیلبنا دفعات بیشتری بتونه در برنامههای رادیویی تلاوت بکنه و این قضیه خودش محبوبیت و شهرت شیخ رو طبیعتاً بین مردم به عنوان یک صدای جدید، صدک جدید و قاری جدید افزایش داد یک موضوع مهمی در زندگی قرآنی محمود علی توجه ما رو جلب میکنه ایشون در راستای فراگیری فنون مختلف ادایی، مقامات رو هم یاد گرفت این کار رو در محضر استاد الاساتید شیخ درویش الحریری انجام داد به دنبال این قضیه موفق شد در عرصه یادگیری تواشیه و ابتهالات دینی هم موفقیت های خوبی داشته باشه و آثاری هم در این زمینه از خودش باقی بگذاره البته این مطلب رو باید بگیم شیخ محمود البنا این اینکه بعضی از اصول اساسی انشاد دینی رو یاد گرفت بیشترین فعالیت خودش رو متمرکز در عرصه تلاوت کرد مثل بعضی از قاریان دیگری که درخشش بیشتری در حوزه انشاد دینی داشتن امثال کامل یوسف البهتیمی مثل اونها فعالیت نکرد وفاداری خودش رو به شکل بارزتری نسبت به فن تلاوت نشون داد و فقط در برهه های خاصی به اجرای آثاری از انشاد دینی و تواشیح پرداخت. بعد از اینکه به واسطه یه تلاوت در رادیو یک شهرت چشمگیری به دست آورد، شرایطی براش فراهم شد که به عنوان قاری ثابت در مساجد مهم مصر به تلاوت قرآن بپردازه. در مساجد معروف قاهره و سایر شهرها به تلاوت قرآن پرداخت، به عنوان مثال تلاوت سوره مریم رو در مسجد سید زینب قاهره انجام داد. <تصفيق> اولین مکان‌هایی که محمود علالبنا در اونها تلاوت کرد در مساجد مهم مسجد ملک در منطقه حدائق القبه در قاهره بود که شیخ به مدت پنج سال در دهه 1950 میلادی قاری این مسجد بود بعد از این دوره به مسجد رفاعی در منطقه قلعه در قاهره منتقل شد و در اونجا هم به مدت پنج سال قاریه ثابت بود و روزهای جمعه سوره کهف رو در اونجا تلاوت میکرد خیلی جالبه که مستمعینش و دوستدارانش و سایر مردم در این دوره به این مسجد منتقل شدند. یعنی وقتی تغییر مکان تلاوتش رو فهمیدن اونها هم به دنبالش جهت استماع تلاوت آیات الهی به مسجد می میومدند. بعد از چند سال همین اتفاق به شکل دیگری تکرار شد به نحوی که وقتی محمود علی به عنوان قاری ثابت سوره کهف در مسجد سید احمد البدوی در شهر تنتا منتقل شد بسیاری از مردم از اطراف و اکناف هم برای زیارت سید احمد البدوی و هم به شکل ویژه برای استماع تلویت محمود علی به تنتا می رفت در سال 1980 میلادی بعد از وفات شیخ محمود خلیل الحسری که قاری مسجد امام حسین علیه السلام در قاهره بود محمود علی بنا به قاهره منتقل شد و به عنوان قاری ثابت مسجد امام حسین علیه السلام تا زمان وفاتش یعنی سال 1985 میلادی در این مسجد به تلاوت قرآن پرداخت و آثار بسیار خوبی از خودش در این مکان مقدس به جا گذاشت که از جمله اونها میتونیم به تلاوت سوره های واقعه و نازعات اشاره بکنیم لا دیگه بسیار خوبی که ایشون در مسجد امام حسین علیه السلام در جایی که بسیاری از قاریان تراز اول مثل در اونجا تلاوت های خوبشون رو انجام دادن ایشون تلاوت کرد میتونیم به تلاوت سوره مبارکه بغره اشاره بکنیم و جن... در سال 1968 میلادی در عرض پنجاه روز یک دوره ترتیل رو برای رادیو قاهره زبط کرد که این دوره ترتیل بعد از دوره ترتیل شیخ محمود خلیل الحسری به همراه دوره های ترتیل شیخ عبدالباسد محمد صدیق المنشاوی و مصطفی اسماییل به شکل همزمان از رادیو پخش می شد. این پنج دوره ترتیل اولیه در مصر در تاریخ تلاوت معروف شدن به دوره های ترتیل خمسه کبار. و لما جاء موسیل می قاتنه ربه قال ربی أرني انظر ایلیک قال لن ترانی ولیکن انظر الالجبل فا این استقر مكانه فسوف یکی از ویژگی‌های بسیار جالبی که میتونیم در مورد ضبط تلاوت‌های شیخ محمود علل‌بنا در استودیوی رادیو بهش اشاره بکنیم این هست که طبق اظهارات مسئولین فنی رادیو قاهره شیخ یک توانایی عجیبی در اِجداء یک تلاوت کامل در یک دوره زمانی خاص داشت. یعنی وقتی از تهیه کننده مثلا سوال می کرد که تلاوت من باید چند دقیقه بشه و تهیه کننده به عنوان مثال به ایشون گفت ما 29 دقیقه تلاوت نیاز داریم ایشون در رأس دقیقه 29 هم بدون کم و زیاد در وقت و بدون دریافت اشاره از عوامل اتاق کنترل تلاوت خودش رو تموم می کرد. به این شکل های بسیار خوبی، بسیار فنی و قوی در استودیو انجام داد که از جمله اونها میتونیم به تلاوت سوره مبارکه انکبوت اشاره بکنیم که جز تلاوت های نیم ساعته هست. کاری که گفته شده ایشون به بسیاری از کشورهای عربی سفر کرده و در این کشورها های ترتیل و های کامل تجوید، های مجود رو هم ضبط کرده با این حساب میتونیم بگیم چندین دوره ترتیل و دوره مجود از ایشون به جا مونده که این خودش نشون پرکاری ایشون در عرصه تلاوت بوده. شیخ محمود آل البنا سفرهای بسیار زیادی به خارج مصر انجام داد برای تلاوت قرآن و همینطور شرکت در جامعه اسلامی در واقع میتونیم بگیم که قاری در جهان نیست مگر اینکه ایشون به اونجا سفر کرد و برای مسلمان ها و مشتاقان آیات الهی به طلبات قرآن پرداخت. به کررات از طرف الازهر به کنفرانس های اسلامی در کشورهای مختلف فرستاده می شد و همینطور از طرف وزارت اوقاف مصر به عنوان داور در مسابقات قرآنی کشورهای مختلف شرکت می کرد. از جمله کشورهای عربی که ایشون در اونجا سفر کرد و تلاوت بسیار خوب و قوی از خودش به جا گذاشت کشور کویت هست که در اونجا تلاوت بسیار خوبی انجام داد از جمله این تلاوت ها تلاوت سوره مبارکه تاها هست که با کیفیت بسیار عالی ضبط شده و موتور که عرض کردیم کیفیت تلاوت های ایشون به لحاظ ذات در کشور کویت بسیار خوب هستند از دیگر تلاوت های ایشون در کویت تلاوت سوره های احزاب و نازعات هست که تقریبا در میان سالی انجام شده و تلاوت بسیار خوبی هست و لا در اینجا حتما باید به یکی از زیباترین تلاوتها قویترین و جذابترین تلاوتهای ایشون که اون هم در کشور کویت انجام شد اشاره بکنیم تلاوت سوره اسرا از آیات 9 تا 24. واقعاً تعداد سفرهای محمود علی بسیار زیاد هست. به بسیاری از کشورهای عربی و غیر عربی سفر کرده. از جمله به کشور سوریه که در اونجا، در مسجد اوموی سوره های آل امران و نازعات رو تلاوت کرده که بسیار تلاوت خوبی هست و از روحانیت بسیار بالایی برخوردار است. سفر به فلسطین و مسجد الاغسا که جزء مسافرت های تاریخی ایشون هست سوره انعام رو تلاوت کرد. محمود علی مثل بسیاری از قاریان مثل دیگر به عربستان سعودی و حرمین شریفین هم مسافرت داشته و همینطور کشور عراق که یکی از شاهکارهای ایشون در عرصه تلاوت تلاوت سوره مبارکه بقره آیات 255 تا 261 در کشور عراق ازشون به جا مونده با این کار اونطوری که عرض کردیم در اکثریت رادیوهای عربی به تلاوت قرآن پرداخت. مسافرت‌های بسیار زیادی به کشورهای آفریقایی داشت و در اونجا به تلاوت آیات الهی پرداخته. کشورهای مختلف آسیایی هم از جمله جاهایی بودند که ایشون در سفرهای متعدد تلاوت‌های خوبی از خودش در اونجا به جا گذاشت و باید بگیم قاری بسیار محبوبی در بین مسلمانان جهان بود، سفرهای ایشون به کشورهای اروپایی مثل فرانسه و انگلستان شاهدی بر این مدعا هست و همینطور تصاویر و عکسهایی که از ایشون در منازل مسلمانان در آفریقا در اعماق جنگلهای قنا و نیجریه مشاهده شده و این خودش نشون میده که تلاوت متین جذاب و ملائکی اینگاری بزرگ دلهای بسیاری رو به سمت خودش جذب کرد. محمود علالبنا سرانجام در سال میلادی بعد از اینکه فرزندان خودش رو دعوت کرد و به شکل دقیقی وصیت خودش رو به پسر بزرگش املا کرد روحش به بارگاه الهی پرواز کرد خب استفاده کردیم از بریانات جناب آقای میرزایی یاد یه چیزی افتادم و اون اینکه اگر شنیده باشین بعضی از قدیمی ها میگن یادش به خیر قدیمی‌ها زمانی ما وارد ارث تلاوت شدیم که شاید بهترین‌ها در اختیار ما بود و استفاده می‌کردیم و خیلی هنوز قاریان کوچک یا قاریانی که سطح اطلاعاتشون سطح تلاوت‌های عادی است و خیلی اثرات فاخری از اونها ما سراغ نداریم خیلی در دسترس ما نبود و این خودش برای ما بالای چهل ساله ها یه شکرانهی داره که هر کجا دست می دیده و ندیده یا تلاوت استاد مصطفی اسمالی به دست ما می رسید یا عبدالباسد یا منشاوی یا محمود علی البننا این این تیپایی که حالا تازه قلوش از این جدیداشون بود البته اون موقع کاملی یوسف بهتینی و امسالین ها هم کمتر شناخته شده بودن اما خب این خودش یک حسن شد برای نسل قبلی ما که تلاوتهایی بسیار خوبی شنیدن و نسل امروزی خیلیشون اصلا آشنا نیستن با استاد محمود علل البننا و اصلا نمیدونن که ایشون چه ویژگی هایی داره من توصیح میکنم اگه کسی میخواد تلاوتهایی رو بشنبه که هم شکل مجلسی داشته باشه یعنی هم شروع حال مجلسی خوندن توی این تلاوتها باشه و هم آموزشی باشه در خصوص مقامات و انتقالهای صحیح. استفاده از استاد محمود البنا حتما استفاده کنه اما در خصوص صوت من همچنین توصیه نمی کنم گاهی تلاوت ایشون دارن که اگر کسی بیاد اینها رو تحلیل موسیقای بکنه پرده صوتی خیلی بالاست اما چون راحت میخونه به نظر ما فکر میکنیم یک پرده صوتی عادیه ممکنه بعضی از دوستان این پرده صوتی رو نداشته باشن و یه مقداری باعث آسیب دیدگی تارهای صوتیشون بشه در این خصوص من توصیه می که این مقداری دقت و توجه ویژه داشته باشین be hidden alive.